قدرت خدا رحمت ابدی سهم هر بشری است و هیچ چیز نمیتواند این همسازی حیات را از تو دریغ کند من به تو رحمت آرزانی می کنم تا در مقابل زندگی بیستی این تماما آن توست هیچ قدرتی نخواهد توانستان آن را از تو سلب کند من آنچه را که باید گفتم و اینک تو درک می کنی خودت را برای یکی از عظیمترین و باشکوفترین تجربه‌های زندگی از آماده کن. اینک زمان آن فرا رسیده که تو را به دورترین ارتفاعات خانه حقیقی ببرم تا خدا را ببینی. خود خدا را. به وزارتارز دستم را گرفت و اندک اندک از جایم بلند کرد. آنگاه پس از مکس کوتاهی گفت اطرافم را نگاه کنم حراسم بزرگتر از آن بود که به بگویم اما انواج امیغی از درون کالبدی از نور که برتن داشتم به بیرون میگردیم در واقع این نور نبود بلکه جامعه شگفتانگیزی به رنگ سفید تابناک بود که همچون خرقه ای را در بر میگرفت حتی پاهایم هم در آن پوشیده شده بود رزار تارس هم در جامعه ای همسان مانند حال ای از سفید و درخشان ایستاده بود. یک میلیون دو میلیون و شاید یک میلیارد نقاط نورانی مشابه در روشن روشن و درخشان در حرکت بودند. نور آنچنان کورکننده بود که به سختی میشد با آن نگاه کرد. گویی بر لبه پرتگاهی عظیم ایستاده بودم. که آماده راندن من به درون عالمی بیانتها بود از استاد در اما او لبخندی زد و برایم دست تکان داد عینک در جهان بینام هستی نوری که میبینی نور خداست و وسط درخشندگی شکوه آن در حدی نیست که بشر بتواند بدان نظر بیندازد اگنون تو یک اتم کاملی زیرا که اینجا اقیانوس عشق و رحمت خانه حقیقی سودمال است که از روحی پس از نیل به کمال و به وقت خیش به آن بازگشت خواهد کرد به هر سود مینگری باران می از قطرات شفاف می بینی. این آن بارانی نیست که بشر میشناسد، بلکه انباج اطوم یافته یا باران روح ها و روی اقیانوس عظیم اکه است که در درگاه خدا چشماندازی این چونی درخشان شاهانه و حیبتاور میآفرینند. آفرینند بشری که نظر بر صورت خدا انداخته باشد دیگر خیشه پیشینش نیست از آن لحظه به بعد او روح است. یک روح کامل خدا چون دیدنی ها را دیده و شنیدنی ها را شنیده است خود نظر بیانداز و ببین یک رودخانه دیدم رودخانه سفیدی که گویی از میان آسمان میآمد و مانند بحمنی غولاسا با نزدیک شدن به پهنایش افزوده میشد تا جایی که سراسر فضا را در بر میگرفت سپس در جوار میلیون ها میلیون ذره نور محو میشد. به بازارتار توضیح داد رودخانه خدا جویباری که در کل کائنات انتشار می یابد جریان می عظیمی که از سریر خدا جاری است گوش کن نور حیبت انگیزی که فرو میریخت آوایی به همراه داشت که به نقمه موسیقی می مانست ای که به طرز شگفتاسایی نافذ بود تا ابد در حرکت و آواز این کلمه جریان مینوی بود سپس ابر سهرنگیزی که بالای سرمان بود در هم پیچید و به چهره تبدیل شد که کل فضا را پر کرده و با چشمان نافذش بر کل عالم خیره شده بود دیگر چیزی ندیدم ناگهان به درون لوح سفیدی از نور در که نقم سرایی میکرد و به سوی آن چهره سهناک میرد اما استاد اک در کنار بود سپس به ارتفاعات قولاسای پتگاهی عظیم رسیدیم که گویی بر لبه عالم مشرف بود و جویبار عظیم هستی از جوردرسای فراسوی با سرعتی حیرتاور جریان داشت روازارتار اشاره کرد آن سوی چهره خدا خود خداست نگاهی به فراسوی نقاب خدا بینداز و خدا را ببین چنان که این تجربه برایت از بوده باشد پس باید خود را برای مناظره های بعدی آماده کنیم زیرا مجبوری همچنان به پیش بتازی تا به شرف درون قلب سودماد برسید چشماندازی که همچون رودی از نور میبینی توهمی است چون در یک جویبار منفرد جاری نمیشود بلکه چون امواج مدور ایستگاه های فرستنده امواج رادیویی به تمام جهات انتشار می یابد. نگاه کن تا ببینی رودخانه خدا و صوت از کجا می قادر به نگاه کردن نبودم، چون چشمنداز تابناکتر و از اینتر از تحمل من بود. میلیون ها میلیون رنگ در پیشانی صورت غولاسایی که در مقابل ما قرار داشت به این می رسید. اما اندک اندک کمسو شد و دایره کوچکی را دیدم که در میان پیشانی خدا پدیدار شد و دریافتم که از میان آن جویباری ابدی از نور جریان عظیم روح خداوندی به سوی عوالم بیپایان جاری است آفتاب مینوی بیکرانی که اتم ها و الکترون های مینوی خود را می سازد و آنها را در جویباری از نور به عالم ظهور گسیل می‌دارد. به بازارتص گفت تو را به سرچشمه خورشید آن نور تابان می‌برم. به درون حقیقت حقیقت ها ما می با یکی شدن با جریانی که بر آن سواریم به آن وارد شویم. آنگاه ناگهان هیچ اثری از خودمان باقی نماند به جز آگاهی از شف نور و کالبد کالبد نور هم نداشتیم هیچ مگر آرزوی غریق از برای نفس و احساس حرکتی عظیم به سوی آن چشم مینوی گولاسا لحظه ای مانند پر قوتور بودیم که به نظر آمد به درون عالم دیگری پرتاب شدیم جهانی از نور مفرت، درون حلقه از برق به عظمت آسمان که از میانش آفشاری از نور با صدایی وصف ناپذیر میگلدید نور در نقطه کنار رفت به چشمه جویبار ظاهر شد یک جفت پای حیوتنگیز دیدم که جویبار از زیر آنان نشأت میگرفت گویی به قامتی اتصال داشت که برای بیان شکوه رنگهایی که دائما برق میزدند و زیبایی اجزای چهره ملکوتی آن توصیفی نمی بینن. این کالبد کیهانی مقام بینام بود و در اطرافش توده های عظیم فرشتگان با رنگ آنچنان تابناک در و شد بودند که نگاه کردن به نورشان بزید دشوار بود به سجده رفتم و صورت بر خاک سهرامیزی گذاشتم که بر آن ایستاده بودیم آوای شیپور نغمهای نواخت و سپس سکوت برقرار شد صدایی مهیب از میان نوری کور کننده به سخن آمد صدایی چنان سهرناک بود که کل فضا را انبشته و نیروی آن هفت آسمان را به لرزش درمیآورد مذالک همچون نجوایی آغاز و اندک اندک بلندتر و بلندتر شد تا به قرشی مهیب و بنگرید ای فرزندان دلیل آسمان ها من خدایم که با شما سخن میگویم شما در خانه سوگ ما منزلگاه منزلگاهها، ها بهشتها، از این فراتر نخواهید رفت و اینجا روح در با باخیش خداوندی من به ذات حقیقی خود باز میگردد و همواره آماده خدمت در جهت علت خداوندی است ای پسر متعال من اکنون تو به کمال رسیده ای تو پیام رسان جهانهای زیرینی وظیفه تو بازگردانیدن روح به جایگاه حقیقی است، تا به دوباره در خدمت آفرینش من درآید. ای زایران زا بر صورت من نظر کنید رانهایتان میلرزد لرزد و قلبهایتان می تپد از پروردگار خود و از پدر حقیقی خود حراسان نباشید چون من با عشقی آکنده از رحمت و الوهیت تمامی آفرینش را می نگرم شما اتمهای کالبد کیهانی من هستید پس باید خدمتی را که شایسته جایگاه شماست در راستای علت خداوندی من بجا آورید. به عنوان یک اتم کمالیافته میتوانی به انتخاب خود فرشته ای شوی که در جوار سریر من به نیایش مشغول شوی. یا در سلسله مراتب اقالیم معنوی به خدمت بپردازید میتوانی تناسخ روح متعال باشی. و روح ها را به دیار حقیقت رهنمون شوی یا میتوانی ذره ای از جویوار نور کیخانی باشی کله آفرینش من اختیار آزاد دارد هر یک از روح ها باید به تنهایی انتخاب کند ای زائر تو باید نور جهان شوی مگذار چیزی تو را از این آرمان باز دارد فقط طریق کلمه تو به منزلگاه باز میگرداند همه روح‌ها به کلمه تعلق دارند و آن واقعیت کل آفرینش است روح را از آن گریزی نیست در بهشت بهشت‌ها زمان مفهومی ندارد بنابر این تفاوتی نمی‌کند مخلوقات عالم چاکی بخواهند به قصد کشف راز آفدینش عالم اطراف خیش را بشکافند و فقط به جهل خود پی ببرند بشری که بجز عالم حواست نمی فهمد در پاسخ جستجوی بی پایانش فقط از نتایج قابل حس واقعیت سهم می عارفان راه حل حقیقی را یافتند چون فقط حقیقت می تواند در جستجوی حقیقت موفق شد فرزند آسمان از فرزند زمین بسیبرتر است قدیسین اک که حقیقتا شایسته رحمت و کمال وحدت با من می از محبت حضور در درگاه من صرف نظر می‌کنند، چون مایلند به عالم مخلوق بازگشته و در رنج روحهایی که هنوز در دام عالم خاکی اسیرند سیرند سحیم شده و عاشقانه در راه رستگاریشان یاریشان کنند شکوه آنان در اقلیم من مفترض سایرین است سایرین تنها سحم ناچیزی از رحمت من میبرند سه اصل بنیانی به تو میدهم که سن مشق زندگیت کنی. نخوست اینکه اینکه به من خداوند متعال خود با تمام وجودت عشق ببرس این عشق را از مجرای ایثار به فرزند متعالم به هم نوع خود و سپس به همه آفلینش به ظهور برسان. قصل دوم این است که در مقابل آفریدگار خود فرزند متعال من و همه هم آن و مخلوقات فروتن باش اصل دوم این است که در مقابل آفریدگار خود فرزند متعال من و همه هم نوعان و مخلوقات فروتن باشی سوم اینکه بدون چشم داشت به پاداش در سراسر پهنه هفت آسمان به تحقق علت من خدمت کنیم کل حیات از قلب من آغاز می شود و کل حیات در قلب من پایان می آبد. ای برکت یافته هیچ چیز را راه گریزی از قلب آفریدگارتو نیست گوش فراده بیش از هر مشیت دیگری در خدمت علت خداوندی باش در جستجوی عشقی باش که در قلب محبوبت شعله می کشد. مرا آنجا خواهی یافت تو آرامش و فراغت را تنها در حضور من خواهی یافت آن را در جای دیگر مجوی تو وجود منی و با غلمت خدمت خواهی کرد تو مستحق هیچ نیستی زیاد که در اینجا نه پاداشی برای روح میابی و نه کیفری. ما جز اشق نداریم متعالی ترین اشقا و تو که اینجا در خرقه نورانیت ایستاده ای جز عشق خالص نیستی این نکته را درک کن ای بشر انگاه که بخواهم بالاترین میزان فیض و رحمت خود را به عالم نشان دهم، تو را که فرزند متعال منی برای بشر میفرستم این بالاترین احسان و عظیمترین موهبت من است او استاد یگانه و فرمون مطلق همه عالم است اراده او اراده متعال کلامش قایی کلام و رعیش مشیت نهایی من است چون او نماینده قدرت من در هفت جهان زیرین است ای بشر تو به دنیا باز میگردی تا امر مرا به جا آوری میگویم که مرا نیایش کن نیایش پروردگار خود را با یک برگ سبز، یک قطع استنگ یا یک شاخ گل به جا آور اما مرا نیایش کن تو این رسالت را برگرفته و وزیفت را آغاز خواهی نمود تو فرمان من عوامر فرزند متعار را اطاعت خواهی کرد اینک برو که به نام من تجلیل شدی تو به حکم من رسالت یافتی این بود آنچه برای گفتن داشتم. صدا به تجزیج خاموش شد و من در وضعیت خلصه خوشکم زده بود و در حال نظاره پیکره عظیمی بودم که در آسمان گسترده بود. دست استاد مرا به خود آورد و دوباره با جریان سفید و ذرین نور یکی شدیم. و سوار بر به سوی بیرون و به درون عوالم ناشناخته فراسوی زمان و مکان راهی شدیم. نور آنچنان کورکننده هراسناک و نافذ شده بود که مجبور شدم از خرقه استاد درآویزم. گویی از نور به بیرون پرتاب شده و به درون تاریکی می میکردیم ناگهان چشمانداز صبحگاه نمایان شد و نور اندک اندک پرتاب خود را به روز داد استاد یک مرا به جلو هل داد و من از میان دیوار توانستم کالودی را ببینم که در اتاق خوابم نشسته بود از بازگشتن به درون آن کالود اکراه میورزیدم اما ربازارتار با اصرار مرا به درون آن فشرد من والدان وارد آن معبد خاکی تاریک شدم و چشمانم را گشودم. استاد لبخندی زد و دست راستش را به علامت بدرود بالا گرفت. سپس ناپدید شد.